فلار دو هفته در مورد دروغ صحبت کردیم و قرار بود که با هم دروغ را ترک کنیم و باید باطن را پاک نگه داریم هرگاه دا باطن پاک شد خود به خود خداوند متعال چیزهای غیبی را نور خداوندی در قلبی هست که پاک هست الا به الله تطمئن القلوب قلبها با یاد خدا آرامش میگیرند قلب از آن خدا هست خداوند قلب را برای خودش خلق کرده بشنو از لیت چون حکایت میکند و زایها شکایت میکند دیگر جواب دیگر جواب شیره نشنو از نه نه نوای بشنو از دل، دل حریم کبریاست دل حریم خداوندی هست قلب حریم الهی هست معارف الهی و نور الهی تجلیات الهی در قلب انسان نفوذ میکنن در حدیث داریم که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که در هر جسدی و در هر بدنی یک تکیگوشتی هست این سلوها، این سلوحت، سلوحل اگر اون اصلاح شد، تمام بدن اصلاح میشود. و این فسدت اگر او فاسد شد، سایر بدن فاسد میشود. الله و هی القلب، اون تک گوش قلب اسمشه. پس قلب محل تجلی انوارات الهی و نور و معرفت خداوندی هست. امام شافعی رحمه الله پیش استاد وکیب النجار رحمه الله که از محدثین بزرگوار است پرسیدند که شکات الاوکی این سوء حفظی فأوصانی الى ترک المعاصی فان العلم نور من الهی و نور الله لا يعطى لعاسی یعنی پیش وکی استادا شکایت کرد حافظم ضعیف است میو اساتذه مؤتتن فرمودند که فاوصانی الى ترک المعاصی فرمودند گناه نکن از گناه گناه رو ترک کن حالا میگن که ثقات علاوه کنیم سو حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی گفتن که استاد محترم حافظ ضعیف است فاوصانی الى ترک المعاصی وصیت کردن گناه نکن گناه رو رها کن چرا فإن العلم نور من الہی علم نور الهی هست و نور الله لا یعطا لعاصی نور الهی معارف اللہ در قلبهای که اسیان واشن نفوذ نمی پس قلب را پاک کنیم و اتی قلب پاک شود بعد چیزهای غیبی رو می بعد خداوند متعال نزدی می میشیم. بعد عبادت زیبا هست انسان دیگه سوک میشه، شیم خود سنگین هست بر وجود انسان پس دروغ بدترین گناه ها هست شخصیت انسان رو خراب می کند موقعیت انسان رو خراب می کند آرامش انسان رو سلو می کند و بیبرکتی رو به ارمغان می آورد از دروغ بدترین گناه نبی مکرن اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حالا نسبت به دروغ یکی از دروغ شهادت دروغ هم شامل هست گواهی دروغین هم شامل هست از گناه های بسیار بزرگ که مساوی با شرک و بت پرستی هست یک از اونها دروغ است خداوند به متا در سوره فرقان بت پرستی شرک را با دروغ همزمان ذکر میکنند واقعتن او قول زور از قول زور پرهیز میکنید قول زور دروغ میگویند نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله تکی داده بودند سوالی پرسیده شده پر فرمودن که قال و قول زور قال و زور قال و زور دروغ دروغ نشستین قدر تکرار میکرد که از محلکات هست از بدترین گناهات دروغ هست پرهیز کنید خالا متاسفانه در وجود مسلمان ها دروغ خیلی زیاد نفوذ کرده کل بدر ما را تسخیل کرده همه زندگی پر از دروغ اگر توجه نکنی همیشه هرچی میگیم راحت راحت مثل آب خوردن دروغ میاد بیرون راحت راحت کجا بودی دروغ چیار کردی دروغ چرا فلان چیز ناوردی دروغ چرا نخری پول نداشتی فلان چیز ناورد این دروغ فرق دروغ این راحت راحت عادی این مرز بسیار بد و خطرناکی هست زندگی ها می‌بینی یک روز آرامیشی نداری پس گناه باری حالا دروغ ماشاالله دوم که نشده اما کم شدی اینه تغییر دادیم کمتر کردیم نه. حداقل موازیبات موازی بودیم جای درور بگی نه. هرگاه حس موازیبات در قلب بیاد در وجود انسان حسی این پیدا بکر ما موازی باشیم. همین چیز خوبیه. موازیبات در برای اعمال موازیبات بیاید بدن انسان. اول همین موازیبات هم بیاد خیلی ما پیشرفت کردیم. حل قبل این انگیزه پیدا شده نه که موازی باشیم بیشتر. موازی زبان باشیم. تقریب در بعضی موارد، در بعضی صورتها که می توانی از جملاتی که دار دموعانه هستن استفاده کنی، بعضی جاها، مثلا خانم زیاد پیر می کرد، داشت فساد در خانواده درست می شد و زندگی به تباهی کشیده می شد، یک جمله دمانایی بکار میری. هم احتمال دروغ هست، هم احتمال صدق هست. اگر در اون برای آرامش خانم چیزی گفتید الله خدا معاخذه نمی کن چون داخل حدیث صحیح مسلم داریم که اونجا می توانید در جا در مورد می توانید که به این کار رو انجام بدین یک برای اصلاح خانم، دو در جنگ جنگ هست جهاد از برای فرید دشمن اگر کسی حربی رو بکار بور تا دشمنو فری بدهد این هم در دروغ وارد نیست و نو استیبون برای آشتی و مصالحه بین مردم و مسلمانها اربیل دو مسلمان دو برادر با هم قهر کردن اونها رو بخواد آشتی بید داخل حدیث صحیح آمده این دروغ نیست مثلا دو برادرن دو دوستن دو, دو رفیقن با هم قهر کردن وخی نازیبا هست متاسفانه امروزه روزه ما بجای این که آشتی بیدیم بدتر آتش قهر رو شغلوورتر ورتر کنیم اما خداوند متعال میفهمه فاست لقو بین اخویکم بین برادرانتان سول و آشتی رو بیارید ما چه کار میکنید اینجوری گفته اونجوری گفته تا کینه بیشتر بشه ارذن بیشتر فاصله بگیرن بی اگر دو دو دوست پستمیمی از هم فاصله بگیرن می خدا را شکر از هم جدا شدن اینها اینجوری بودن اینها چیزا خوبی نیستن مثلا ما اینکه از مسلمان در آرامش و آشتی سول هست لذت ببره نه از قهر و فتنه فتنه خوب نیست پس بنابرای ایک از اونهایی که نبی مکرم السلام صلی علیه و وسلم فرمودن برای آشتی دادن خوبه اما برای ایجاد جنگ بدترین گناه هست که بین این ها اختلاف درست بکنه حالا بی این صورت دو سلام با هم قهر کردن شما میخواه اونها رو آشتی میدید حالا این شخص میخه آشتی بیده اینجوری میتونه بگه میره پیشو میگه فلانی اون شخصی دوست تو اینجور نیستو فکر میکنی اون از تو بدش نمیاد از تو خوشش میاد تو دوذ باری تو تعریف کرده اگر اینجوری بی خود به خود دلش نرم میشه در حالی که شاید اون چیزو نخواسته اما شما با این گفته گناهکار نمیشید چرا گناهکار نمیشید به خاطر اینکه حسین زن روی مسلمان است ما حسین زن جایی فلانی یوری نیست خوبی های تعریف بیکنید بیا پیش این آقا فلانه این جوری نیست و فلانه شما رو دوست دارد و محبت دارد اگر این جوری پیشون هم بگید آشتی میشه و خود آتش جنگ پایین میآید می آید در این برای یا این که بخواهید جلوی فتنها رو بگیرید اینجا خوبه گای گای ببین داری کسی برای کشتن کسی می و میخواد خون و رو بریزد. یا مال مسلمانی رو بخورد یا حق مسلمان رو پایمال میکنه ظالم در ظلم کند اگر به وسیل دروغ جلو عشق گرفتی انشاءاللہ اینم در دروغ وارد نمیشه چون اینجا بخاطر چی است نجات مسلمان و آبروی مسلمان و برای حفظ امنیت مسلمانها در غیر این صورت دروغ ها بکار نبرید پس بازم سعی بکنید تلاش کنید که دروغ از بین برابر و تا زمانی که انگیزه در دل ما نواشد و انگیزه نجات را و اصلاح را نداشته باشیم هرگی اصلاح نمیشیم باید انگیزه داشته باشیم در دل خود اون ملکه و جوهر را پیدا بکنیم یعنی هرگاه آمد در قلب ما همین انگیزه پیدا شد این معاذبت من داره چی میگم معاذب زبان خود شدیم زبان داره حرکت میکن شد دروغی معاذب هر زدی فوراً ناراحت شدی دروغ بیرون شد اگر بعد از دروغ ناراحت شدی این چیز خوبیه پس شما رشد کردی در این طرف جلو میرید اگر دروغ گفتی اصلا ناراحت نشودی دروغ گفتی اصلا دیگه تکانی نخوردی اصلا موذیبتی نیست ناراحتی نیست پس بدان ما خیلی پارتی و خیلی از واقعیت دوریم این بدترین حالت انسان است که در گناه عادی باشه و از گناه ناراحت نشه. اگر انسان تا این حد رفت گناه میکنه، اما هیچ گناهی صریح پیدا نمیشه، گناه میکنه، اصلا ناراحت نمیشه، گناه میکنه، خوشحال هست، گناه میکنه، انگیزه ترک نیست، پس ما خیلی در منجلاب بدی گرفتا شدیم. این محل تأمل هست که سمت تفکر که الان من کجا هستم، چقدر از انسانیت خود احکام کجا از انسانیت من دورا انسانی داره صفات خوب و زیبا باید باشه. پس بنابراین حد عقل این انگیزه رو در وجود خود خالق بکنیم درست بکنیم هر دا گنایشو فرد در قلب ما تکانویم اگه این تکان آمد پس امیدوار باشیم که الله می توانیم جلو حرکت کنیم و رو کاهش بدیم انشاءالله حالا سه هفته در یک موضوع شد انشاءالله با هم اول دعا بکن از الله رب العالمین طلب توفیقاتو بکنی تا زمانی توفیقات رب نواشن ما هیچ چی نمیتونه بیکنی ما هیچ چی ما کیاستیم هیچ قدرتی نداریم هیچ نیروی نداریم همیشه میخوانیم لا حول ولا قوت الا بالله از ما هیچ چی ساختی نیست فقط الله رب العالمین پس از الله بخوانیم خدا توفیق ترک گرابی دی بعد از اون حرکت بیکنیم انشالله معظم باشیم و این انگیز باشه گناه ترک میشه پس هفته بعد دیگه حدی اقل یک آماری گیرین کچیک باری زیگران وقت کوتا آمدین چند دروغ گفتیم اگر هفته یک دروغ هم نگفتیم بس شما دیگه موفق شدی. یک نقطه که بگم یعنی باید در به صورتی عادی باشین با خوبی ها بدون معاذبت با اون کار انجام بگیره بماد یہ گوش کردیم مثلا در مسجد با پائے راست بیاین با پائے چپ بیرون وقتی کفش میپوشیم پائے راست اول پوشی پائے چپ بعد وقتی که جورا بیرون میکنی اول پائے چپ بعد پای راست وقتی میپوشی اول پائے راست بعد پائے چپ در پوشی اول پائے راست بعد پائے چپ در بیرون کرد اول پائے چپ بعد پائے راست مسجد میگین اول با پائے راست داخل بشی پائے چپ بیرون اگر این آوال ما به صورتی انجام گرفتن یعنی بدور که حواست ما باشه در مستف با پای راست سوابه شدیم بدوری که ما تمرکز داشته باشیم اول جورا پای چپ را بیرون کردیم کپش پای چپ بیرون کردیم یا وقتی که لباس تاویز میکنه اول دست چپ را بیرون کردیم اگر اینجوری خود به خود در آدی شدیم پس ما الحمدلله رو مسیح قرار گرفتیم با اینجوری آدی باشیم. پس دروغ همه صورت باشه وقتی صحبت میکنین خاص اینجونه باشه با وازی باشه حالا ما چی به راس بغه دروغ بدن اگر در یار تفکر آغاز نه ما در مستی داری می غلطی داری تکان می داری می لرزید بعد به صورتی آزادی باشین بدون از اینکه موازه باشین هر حرف بیرونیات فر راست بیرونیات بعد تا این حد رو خود ما کار بکنین الله تمرین بکنیم همه این حل میشه ببینید انسان ها صالح و نیک را بزرگاه نگاه بکنیم مستد میرند همون دارم با تلفن صوبار میکنه اول پایچه کفش بیرو میاد پایمیزاری اول پایر داخل میده موازه تلفن از حواس جای دیگه هم هست این تمرین کرده تمرین کرده این خیلی خوبه پس به صورتی آمال و صفات زیبا را در وجود خود ما خلق بکنیم که جود وجود ما باشه باب بدر ما عجیل شده باشه مانند سور فاتحه سر امراض و انشاءاللہ حواست تو بازار کتبال یا بغازیا در سور فاتحه رو بھی خونی از بس زیاد خوندی عادی شدید همین آمال همین سورت انشاءاللہ انجام میدیم.